موسیقی کفش های بازیگران علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، سعید سلیمانی، زهرا برومند، جمشید لایق، کاظم از نیا، عزت‌الدین رمیزانی‌فر، رضا عبدی، محمد ورشوچی، سامی محسنی، ایرج سخن‌داری، ماکس نرسلانی، محمد موسیقی فریدون ناصری کارگردان محمد متوسطانی یک کنندگان بوشنگ نوردهی رزا علی پور متعلم رستم فرمرزین و اصد دلشاده ارشادی داخل مکتب خونه بچه ها مشغول درس کندن یکی از بچه ها واسه پسر بچهی که تنبیه شده و روی یه پا کنار مکتب خونه ایستده شکلک درمیانه دو زیر سن و دو زیر سن و دو پیش سن جه دوزه بر جن و دوزیر جن و دو پیش جن جه دوزه بر جن و دوزیر جن و دو پیش جن چه دوزه بر جن و دوزیر جن آقا پسته شدم اجازه بده پا عوض کنم پا عوض کنی؟ چه حاصل وقتی پا در کفش مردم می کنی؟ غلط کردم والا من کاری نکردم کاشکاری میکردی و قلط نمیکردی اینجا گوش که باید بکشد؟ چرا؟ پس تو چرا کشیدی؟ بیکل خود هم نیدی؟ آمدی حساب و نصاب بخانی بچه یه استخانی نکب باده بکشی که په نبانیم بیگه نمیتونم رو این پا این پا هم ببر بالا چطوری؟ سر بگذار زمین و هر پا ببر به هوا پسر بچه سر شروع روی زمین میذاره و پاهاش رو به هوا میبره م... تازه زندگی اگر تقصیر نداری چرا لام تا کام ساکتی چرا راست دروغ را پاشن نمیکن گفتنی نیست آقا اگه بود میگفتم پای پدرش در میانم؟ <تصفيق> مکتبتار به طرف بچه ها میره خب گوشه یکی روی میره ازیگر کرا آمان تفلاب جدخان بگو کمش کنی کردی کی که موش دواندی که گوشت را کشی اگر بگویم شما هم می کشی اگر نگویی چوب و فلک وای پر کردنی و جر بهشت بهشت بهشت به من بزر بچه فرار می کنم بجاده املا با نکنم به احسان گوشت را کشید و بای گرفت بله قربان قول من محترم است زیر گول بزنی ده اما حد نزنی ده هر که رو بر میداره را بر میگذیم نیست کفش شما رو بردارم برای چکا؟ نکن اما اگه بکنی میخندم خاموش خاموش. چموش چه نهایی بکن پسر بچه؟ کفش های مکتب بر می داره و دستاش رو توی اونا فرو می‌بره و چهار دست و پا شروع می‌کنه به راه رفتن از این یادی چه می افتید؟ آبه کن کفش های سدر احسان میرزا نوروز مردی که کلاهی نمدی به سر داره و شالی به دور کمرش بسته و موهایی سپید و ریشهایی بلند داره از میون بازار گذر می کنه میرزان روز یا طالعت را ببینم من از طالع خود تو از آنچه من میدانم می قافلی. سلام قافلی شما برشما شما چرا جیب هایت را چسبید میرزا در اینل د که مشمور ترینشان چه هر کسی شاید یکی از آنها باشد. از جمله آقا آه... شایدم خود شما. <تصفيق> اما بشنوید از کفش هاش پاره و کنه که دهنشون موقع رارفتن رفتن میرزا باز میشه. یه دفعه چشمش به سکه میفته و اطراف نگاهی میندازه و با احتیاط دستش رو به طرف سکه میبره اما سکه به نخ بسته شده و توسط یکی از کسبه به طرف عقب کشیده میشه میرزا دوباره تلاش میکنه اما موفق نمیشه و باز هم سعی میکنه سکه رو برداره یه دفعه خودش در جمعه کسبه پیدا میکنه سکه ها هم از تو میگریزند میرزا میرزا ککان نعمت نکن برش شاید میرزا پشت مال دنیا کرده میرزا با عصبانیت پاشو روی سکه میذاره و اونو از نخ جدا میکنه من این سکر همیان بازار پرتاب میکنم که همه از گوشات در سی میزان و روز آگاه البته با مال مرگشی <تصفح> به من نابینا کمک کنی <تصفح> <تصفح> میرزا سکر در دست میگیر و راه میافه شما که شب و روز را میبینی شکرانه بدهی به من آجز کمک سلام بر میرزان و روز. امروز دیگر مرا نامید نا نکنید حجب این دیگر چجور کردن کردنیست؟ اگر تعرف میکنی چرا با دست خالی؟ شد یک بار به جستخن نیشتار چیزی به من آجز بدهید بیا امروز میخوام سکه ای میمانت کن به طرف مرد نابینا میاد و سکه که دستش بذاره و از اون دور میشه بگیر خدایی من که باور نمیکنم کنم این که سکه قلب هست نه البت واک باشد میرزا به طرف حرشای پیندوز می روی چه نه چی؟ نه تعمیر نمی کنم من تو به احمال فرزیدم کنون نیام آخه چرا؟ هفت سال از اینها را خریده ای و بنای جان من شدی از بس وصله برام برامده برام زمخت و مهیم و صدا شده هر جایی کو کونمونه کار استاد پین دوست میخندن که تقش در آمده نشدیده آبروی آب روی مرا بردی انگوش نمای خلقم کردی هر بار وحده میدهی که نا میخرید شر از کم میکنی نه وسله روی وسله رسیده به هفت طبقه دندان نما شده یا چشمم بهش میابدد گویی دهنگجه میکنن چه میگویی مرد تو برکت های عدد خط را میدانی آسمان هفت طبقه است و زمین نیست دارد که عفش های میز و نوروز هم هفت طبقه باشن سرک هر سالش مرغوب هست. اگر هر چیزی را که هفت سالش را دور بیهندازن چیزی در جهان هفت ساله ببیشه منه ولی کافشای تو به جهنم میماند که آن هم هفته بکنه از این تشمیهت خوشم نیابد تعمیر نمی کنی؟ خودم می کنی دلم می خواهد کفشایت را پس از تعمیر ببینم میرزا از بازار بیرون اومده و رفت افتاده طرف خونه میونه را با مردی راهگذر برخورد میکنه سلام میزنه علیکم سلام به قصد دکه شما می آمدم م. همسرم بدهوال است دوایش همان است که گفتم علف 40 گیاه که بر آتش بریزی فردا بیا آماده است عمرت درست باد دیگر فردا از فردا نمیشه مطمئن باش برای همین کار است که امروز زودتر به خانه میروم زنی میرزا به همراه بقیه اهداعیای میون حیاط مشغول تهیه عرقجات گیاهی بوسه آتلیه میرزا اند. داماد میرزا روی تخت نشسته و مشغول خوندن گلستان سعدی. آدمی به چشمش دودان و, و, و <تصفح> دو ببینم چرا را انسان اینطور دردمیکشه. روی چشما دقت. در همون موقع صدای کفهای میرزا به گوش می‌رسد. پیدای پای پدر میاد میرزا وارد حیات میشه و به بز سفیدی که مشغول خوردن علفه نگاه میدازه چرا این همه اسراف به خرج داده این بزرک فردا و پس فردا هم باید علف بخوردن سلام سلام سلام سلام سلام بر شما آنخواه همه رو مشغول کار می‌بینم به شما من برایشان از گلستان سعدی میخاندم احسان آفرین اما بهتر نیست کلام سعدی رو از بر کنید تا زده میگفتن به کار کاری گرماشه پدر ما که هر وقت به دست بوس میاییم از انجامی کارهای شما دریخ نمیکنیم. شما باید ممنون من باشید که همیشه در این خانه به اندازه کافی کار برایتان میگذارم که بیکاره بار نیایید از این گفتند کار جوهر ما در خانه و خود به که پایید کار میکنه. بله و گفتند هر چیز به جای فیش نیکوست سران م... میبینم م... که واقعا اهل دانشو معرفت هستی پس باید سخن شیخ عجر را به یاد داشته باشی که پرمونه اندرون از تا آمخاری در تا دران نوبل مغرفت میبینم میرزا سبد میبین رو که روی تخت کنار پای دامادشوی دامادش دامادش از روی تخت برمیدارم و به اندرونی میره م... روز اول ماه نو اطریات و عرقیات میرزا روز در آمده بودو تب شعرمانم بد نیست که برای فردا وعده این عرقیات را به هزار نفر دادم میرزا وارد انبار میشه و شیشه های نیزه ی عرقیات رو جا میکنه اگر کسی دستمز موز میداد اینچنین انتظار کار از ما مرجان مرا دیگر از آمدن به خانه پدرت معاف بدار اختیار با توست زنی میرزا به همراه پسر کوچکش وارد انبار میشد کجایی من دیگر تحمل نمی کنم هر چه میکشم از تو میکشم مرد می بس باکتم اما این دیگه خاموشی بردار نی. من این بچه را با رنج به دنیا آوردم و با خونه جگر بی تو بازار کردم شده از زن؟ این رفتارت و بچه های بزرگ و عروس و داماد است آن هم کارهای دیگر است که ثبت شده این بچه مسخره بزرگ و کوچک شود. شیشه ها زن آرام آرام چرا که شکرد من این بچه را نفرستادم مکتب که انگوش نمای هرکس کس ناکست شود. چرا باید مسخره شود به خاطر کپسول پدرش چرا باید انگشت نمای بچهای مکتب شود به خاطر ناخن کشی چنزی پارپوشی بزرگ ترک نفهمیدم نفهمیدم اینها رو بچهای مکتب گفتن همه میگویند چرا به مکتبدار شکایت نبردی کپسول تو خندیده تو ساکت بمو تو هیچ نگفتی تو هیچ الی بچه به خاطر تو با همه جور داغ ریختم اصلا تقصیر من, من است که در این خانه ماندم من که در خانه پدری دست به سیاهه و سفید نمی و تو به خانه ای تو اومدم جسکول بدی کردن و مهر سکوت و اما دختر و داماد و پسر و عروس میوزا که دیوار فالگوش بایی خلق بچه ها است که زود برن و گریه سر بدن تو چی خواهیم نه مقلته نکن تو بر من نیز معلوم است که سال تو را میگویم کپش نوبه قرنه میخوایم میگویم مرا به زیارت به بر نمیبریم دخترت با شویش مهمان آمده آنها درشت میگویم پسرت با همترش به سلام آمده آنها تا نمیزن آن میره آمدن آنها بیتمندان هیست بگم که چشم جیب من دارند و بست چه از ما میگویید؟ من و شویم خالی ساخته که تهمت و تنه نشترین کی؟ کدام دستی جلوی شما دراز کرده این؟ بیا برفیم من که باید شغل شما را میگرفتم رها کرده و به صحابی رفتم تا سربارتان نباشم چگونه میفرمایید چشمم به مال شماست؟ من که غیر از شما میراز خوری ندارم حق است که حساب دانه دانه سکه های مرا داشتم. تمام یه شکایتون و هایش ارزانی خودتان فقط یک راه هست که دیگر این حرفا را نشتنید. آن که دیگر تا به خانه شما نگذرد. پسر و عروس میرزا میره. می‌بخشی مادر. زنی میرزا از اتاق برون میاد. میرزا به دنبال زنش آن روزگار زیاد دید. از این حرفا خیلی چه همین روزا بر برمیگردند و عذر بی میخواهند و به درجان پدرجان می‌رویند. من میروم خانه پدرم. یعنی <تصفح> چه؟ تمام شد تو کسی نیستی که سالها پیش به خانه از آمدم تو عوض شدی میانه دکه و کارگو ح گ شده ای نمیدانم پولهایت را کجا انبار میکن ولی به این انبار بیش از همه مدل ما مادل بر... و ما به ض بسیاری از شنوده یکی از برنامه های رادیویی اه... که قابل توجه هست رادیوفیلم هست. امروز رادیوفیلم مغول نیست مردم چه میگویم؟ بعد از یک زندگی؟ اگر تا به حال برای همینست. سر و دختر بزرگ من از ما برید این پسر کوچک احسان را از انگشت نما بودن برهان و کفش های از را البته عرفه نیست مزلی پول در میان نیست و یا خیلی ایت دیگری در بایومن به این راحت میدید با کفش نوی سب و با مغز به سر <تصفح> خدا خورم خداحافظ اگر طلاق میفرستی بفرستی نام خود تو از من بردارم نا همین کفش ها زنگی چرا نمیفهمیم این کفش ها برای من آمد داشته مایه گشایش کارم شده زنی منو و بچه باید از این خانه هم به خاطر شگونه همین کفش کن. نکنه از. اگر کفش خودم را نو کنم بعد لابوت باید مال شما را هم نو کنم بعد لابوت پیراهن و سرنداز و کلاه و لباده و دیگر چیزها آخر یه شیده تا نیست آتش زیر سرد شده. ها به تشتک ها گرم شده کجای زن؟ به دادن برز همه عرقی ها دست رفت زن اگر فکر مرا رو می فکر مردم باش که محتاج این عره یاد. از به فکر مردم افتاده ای تو همان بهتر که فکر کیسه خودت باش. میرزا با عجله به سراغ دیگای عرقی جات تکه چوبی رو برمیداره تا آتیش دیگاه رو دیگار روبر کنه. زن به همراه پسر کوچ میرزا فونه رو ترک میکنه. چه بردختی لحمت بر شیطان برگرد زن کاری نکن که تشریمانی بیا خوره این کارت را میکنم می چند قدم بر داره. یه دفعه متوجه بوزی میشه که همچنان مشغول خوردن علوف است می بینی با من چه می آج همه مثل تو می ده من را می دهم تو هم شیر می دهی دیگر نه به کفشم کار داری نه به کلاهم تو هم که نرسازگاری می کنی با اندازه یک پول هممان از خوراکشم می دور باش، دور باش، به تشکرار مراغه نمی فهمت. این که شمایه بخت من است آمد کار من است من آن را با تولد احسان خریدم احسان ترکم کرد و این که شما نزنم ترکم کرد و این که شمایه در همون وقت جارچیان عبور کجابه سلطان از میون گذر را اعلام می کنند با من به سفرها آمدن باییز می شونم که خوردن دوزبی از بس بس کنار کاروان سلطان می گذره و مردی به دنبال اونه این که از کنار شما گذشت دوز بود چرا دستگیرش نکردی؟ اگر نمی بینی که در نکاب حضرت حاکم هستی شما باید حافظ جان و مال مردم بشید ما محافظان حضرت هاشم هستیم ایشان حافظ جان و مال مردم مرد, مرد. نزدیک دو نفر برای دستگیری دوست شما دو نفر دو تا سرباز با عجله به دنبال دوست میرند سربازا سپر و نیزهشون رو به روی زمین میدازن و میرن دنبال دوز. دوز به یکی از سربازا برخورد میکنه و دوباره فرار میکنه سربازا دیگه سنگی پرتاب میکنه سنگم درست میخوره به پیشونی سرباز اول سرباز اول بر زمین میشه در همون موقع سپر و نیزه سربازا ناپدید میشه بودن ما چطور درعت دوستی میکنم؟ میرزا از کنار سلطان داروق عبور میکنه و در حین رفتن تعظیمی میکنه این مردک میرزا نوروز اقتار نبود چرا گربان کنیده این مال زیادی هم داخته بله غربان. اما سخت سکه هایش می میپاید میرزا با اخوچه به تس وارد گرما بمیشه از سلام میرزا نوروز حجب یاد ما کردی یک سالی شماران ندیدم در خانه لاباک داریم تانیشون آه پس امروز راه گم کرده ای بسیم حتی سلامت به خواهی مصرور محتمت و تجار. مرد دلال برای محتمت و تجار که مرد لاغرندام و میان سالیه رو روی زمین پهن میکنه دلت نکنم دو روز این طرف ها هستن حتی <تص> <تص> سلامت باشی میرزا های تو هر عیبی دارد خوبیش این است که خبر میدهد دهد کجایی؟ برای همین نگهش داشتم اما در عالم خیشاوندی و همسایگی نصیحتی بهش رو تو مثلا مردی محترمی کاسبی معتبری عیالمندی و حکم کتخدایی داری خوب نیشین مایه رسایی را با خودت این و برد ببرید مایه خنده مردم شده ای چه اید دارد مرخصش کنی و یک جف پوزار نو بخری یا از خدا بخواهی یک جف از آسمان برایت بفرستد یا دوست بلند نظری پیدا کن که به تو پیشکش کنن از خریدن حرف نظر که قیمتها تا چشمشان به من میفته پادم میرفن اما به لطف خدا امیدوارم که روح سوی پای میدارم از دوستان و خیشاوندان هم بی انتظار میشتم که اگر کفشم را بر من ترجیح میدهند خودشان قدم جلو بغزارم. اگر اشاره به من داری میدانی می که من هیچ وقت چیزی از تو دریغ نداشتم اما جسارت خریدن کفش برایت نداشتم. پس از این معقوله گو کنه تفسوس. مطلب این است که میخواستم تو را دعوت کنم به جشن عمر خیلی عروسی میان بندزاده زاده و قیلی ولی حکما گفتم که کهنه برکت از زندگی نور میبرد و تو با این کفشا مبارک باشه میرسا کفشوش زیر سک و مشغوله در آوردن شاله هش میشه البته شاید هم استرسی پیش کشید نمید مطمد و توجار از گرما به بیرون میره آفیات باشد آهایت آه پسر شربت دوم را بیاورد نه نه میرویم خیلی کار داریم برکت بیش خوش آمدیم خیلی پیش صحت زر آمد از آمه واحد برسن. آه همه تاکن بیا داخل بدوید بدبید همه بیا گر. همه جا آ را سو تمیز کنید همه جا را جاروک کنید آب تازه در حوز برید پچه مخصوص پله هاجه زعفران پارچه ترمه، پاطزن و قدیان مخصوص. همه سر جای خود آماده ده. براموش نکنی بیروی چشم حکم خدمت میبتروند دلاخا همه جا رو مرتب میکنن روی سکو آب و کف همام رو جا رو میزنن آب میکنن فرش فرح میکنن شربتی ترمی و بداخره قلیانی مهیا میکنن چرا خبر نفرمودید غرغ كنید اگر جان قابل است بفرمایید قربانی کنید مبتقر فرمودید چند مشتری عامی هستند امر بفرمایید بیرون بیاندازید نه نه مزاهم نشدیم از تشریفات کسل شدیم از امور شغلی هم خسته گفتیم سرزده بیاییم صفایی بکنیم با. یادتان باشد کسی خبر نشد. هر که آمده باشد سه بر روی چاش. بگوش باشید، فخر زمین و زمان مفخر مکین و مکان حضرت های حمامی گفتیم بدون تشریفات پاداش قربان لا تاب را ببر بیرون مشتری دیگری نخواهد سلطان وایده گهر مابه میشه سرباز از شدت خستگی در بیرون گهمابه نقش بر زمین میشن. مرد حمامی در مقابل سلطان تعظیم میکنه و سلطان استحمام میشه. سربازان ظرف آب و دست به دست میگیرن و با بلست سر میکشن. میرزن و روز در کنار خزینه همون به خواب امیرتون رفته و در حال گفتن تصویر خونوادهش، مرد پینه دوز و دوتا مرد که احرقیجات حجرش رو به تاراج میبرن و مکتبدار رو تو خواب میبینه. یک. هرها برا از شدت پریشونی به یک بار میزنه میزنه با داخل خزینه میافته. سلطان در طرف دیگه خزینه به خواب رفته مرد در به میرزا اشاره میکنه. سلطان در خواب و مشغول هزیان گفتنه میرزا از خزینه بیرون میاد و لباساشو میپوشه مرد هممامی و همراهان سلطان در خواب امیغ فرو رفتن میرزا به کنار سکو میره تا کفشاشو برداره که یه مرتبه یه جفت کفش نو و توجهش رو جلب میکنه. <تصفيق> میرزا کفشو رو در دست میگیره. افسس. ان رو میپوشه و سکه‌ای داخل ظرف حمامی میندازه و از گرما بیرون میره. مرد همامی با صدای سکه از خواب بلند میشه اگمرو مو عزیز حقا که خویشاوندی را تمام کردی تو که خیال چنین مرحمتی را داشتی بهخاطر پیشکشی دامادی دشرات اما این گفته شیء عجل را آبوزه گوشن کن توی کی میکن و در دجدن وقت اس برون سراغ همسر بطریات و عربیات میزان و روز باید زودتر آماده شود میرزا با خوشحالی راهی گذر میشه میرزا باید کار میرزا ناروز باشد اما چطور صدای کبچه هایش را نشن خوب دور نیست که این خبر ناگهانی همسرت را از پا در آورد بکرمیست و وسیله دو هم میرزا به در خونهی دخترش میره دامادت در خانه باشد چه؟ براخره او قریبه است چرا به وسیله پسرت این کار را نمی کنی؟ میرزا به راه و دختر و دامادش از ایوون سرک می کشن مرجان پدرت با کفش های نو باور می کنی؟ اگر کفش نوی پس پدر من نیست میرزا به حجه پسرش میره اما کهر حجه می اگر قرار از خواهش کنی چرا از هم سرعت نکنی که اون شریک زندگیت هست جرعت داشته باش و نزده اون برو میرسا به راه خودش اعتمی میده چرا سر بلند نمی کنی گویه پدرت بود که از اینجا گذش تو هم بیجهت سر بلند کردی اگر پدرم بود از صدای کفشهایش میشه اگر حاضر نشد تورا را که آب رولت نزد پدر و مادرش همسایه ها برمات میرفت من همسرم را میشناتن با هم به ادراف در همیشه به کلام محفظ را میگیدن خوش میده باید بدانم چه من میسو خنباقی آفا شاید با همسر احزیدم که از جوری از آه سر نه اینکه دید همسر جووری ازنده میتوانم تحمل کنم چهاری... اما بشنوید از گرمابه و سلطان که مهیایی رفتن به قصد شده اما از کفش خبری نیست تف من نیست من تحقیق کنید کفش من کجاست؟ اگر اگر سوز کنید چه کسی آنها را برده؟ بروی ها همه جاره می گردن همه خبر دهید؟ همه جارازی رو رو کنید تفحوز کنید که آیا بوده یا مشتری یا دوزی در قالب مشتری دهلاک ها و سرباز بازم همه جای حمامو رو و میگردن و میگردن و میگردن کمک های حضرت آجون رو بوده شده نبود نبود هیچ زن در حامین پس این چاپش شای افتتن چیز ساسان چیز؟ از آن میزان هتان از کار تاقرض از را خبر کنید پاا او را دستگیر کرده بدان رو کوبری آورم در آن چی بری برویسم تا چیزی از قلم نیفتد میرزا مقابل خونه پدر همسرش ایستاده. به روی سک میشنه با کاغذا قیم بیرون میاره. از عمری از, از من کاری بخواهی و کوتای کنم من چه باشم چه کنم؟ چی خریدم که بی شما را منتظرم. اردبیل بفرمای در خدمت ازداری آذرم. خب گسم ها به در خونه میرزا میان و در میزنن کسی در رو باز نمیکنه. اونا با لگد به در می کن. در باز میشه و وارد خونه میرزا میشن اما میرزا به در خونه پدر همسرش رفته همسرش کنارره در ایستاده و میرزا از روی کاغذ مشغول خوندنه دل, گفتی ما را به کبشی دل ما را به کپچی فروخ دل ما را بهسوخت. مارا کفش خود هم حساب نکرد میانه ما کفش کاره را انتخاب کرد آشان و کلی ها منو دیتر با میدان گزمه شما کفشی خریدم که در هر این موقع گزمه ها سر بیرسند نگو را خودت هم نمیدانی <تصفح> چه؟ میدانی کفش های چه کسی را دوست دیده ای کفش های آره. من شما نشتی باختی رابیا. و میرزا رو دستگیر می‌کنی. ها روی عمرم از دستم سرم بردیم این ایشان از دوستان آبرودار. آن نامه در سپردا؟ خصوصی بده به من مامما. اما سره مردم است. میرزا کجا؟ برای گرفتن داروی همسرم به دوکانت می اومد. که در بندم فردا بیا. زنم از دست می‌روه. به دادم بره. کسی رو پیدا کن به دادم من برسد. اوه چه بخت خفته است وقت نیست نه بده حضرت موکمه تو جای بفرستید میرزا رو به قفس بردن و در مقابل حاکم اون رو به زمین خوابوندن پاهاش رو بستند تا اون رو فلکش کنند بفرمایید چه غضبی است که از آن صدای خنده بلندند بنگ هم الان اهدار شده تمام بدهید حضرت اوجم تمام بدهید آه، از کفشی خریده ای که می تا. بله؟ اگر بپرسم چند وزکی خریده ای جواب چه می بافی؟ امان بدهی تو کنم بردک، از این پاپوش فقط یکی پیدا می کنی؟ آن هم به پای حضرت حاکم بزن چشم قربا ره داشت ره اینجا را گوش <تصفيق> در دل گفتی ما را به کفشی پروخ دل ما را بسو <تصفيق> شاعر به خاطر این مزخرفات بزن مرد ترچه بالا میبره اما به خاطر خدا نزن شو شد؟ کیست؟ درگاه قربان محتم دو تجار بری آه شما هستی؟ خاش آمد. نزدیک بیایی آه، آه، آه. چه شده هست ویرزا؟ بلایی رسیده است که نباستم نب... مرزت را میشه ناسی؟ بله غربان دیزا دو روز افتار از... هست دوزد کفش های حضرت حاکم بابر کرده دیدیست؟ این نامه را بخوانید تا معلومتان شود ازن که دیگر پا در کفش بزرگان نکند به دادم برس خواهج محسوس به دادم برس به بد درد سری افتادم به دادم میرسا است بردوب آبرو است آبرودارست عیال من دو خانواده دار به <تصفح> خدا یمان کردم پیشکشی سرکارد ایمان <تصفح> التفات به فرامت حضرت حاکم معروم است که این بخت بندشته قصد آشی با ایال خود داشته ای بینید اگر بر لعاب نوم افزوده لعاب خریدانیدنید شما برای شفاعت آمد. اگر شفاعت هم بپذیرید بر بده منت کداشته شفاعت شما برای ما مورده برست نست نگه دار عمر حضرت حاکم درانفار چون بار اول این مرده هست حبس و تعدید نه فقط جریمه و مخارج این رفت آمد را بپردازد مرخصش کنیم هم اکرین نکابش را میشه؟ نمیشن موتم دو تجار به نامه نگاهی می چند زربه خورده؟ از خرج کم کنیم اگر کم میکنید چند ضربه این شاید پول همراه ندارد هرچه پول همراه دارد بگیرید و آن کفش های انگیزش را ها هم به او بدارید میل ندارم حتی یک بار دیگر روی تو و آن کفش ها را ببینم بیرون میرزا بناچار زریمرو پرداخت میکنه و کفششو میگیره و از غصب بیرون میاد و سکه هاشو میشموره و میگه. خرید یه یک جور میره بازار به حجره پینه دوست. این طرف هر زمان همان است که گوهرهای خرید جمشید و آمدند. عجب امروز آفتاب از کدام طرف در آقا؟ را کنار بگذار چفش مناسبی بیار بیا مناسب این ندارد. چطور است؟ نظر خوب است. در عمل بهتر است قیمتش چند است؟ ده سکه تخفیفی ندارد راهی که ارزان ت مثلا من اگر این کفش ها را هم بدهم چند می شود ندا اگر سوال و کلا هم را بدم شما بیست شاید حرفی میرزا کفش های نو رو به پا میکنه. پول کفش رو به پینی دوست میده و در حالی که کفش های کو رو در دست گرفته به طرف حژه های می میدهه است نخواشی سلامت باشی برو به مادرت بگو کفش نو خریدمو به خانه برگردم میبینی که دستم به کار است وقتی مهات برو چرا خودت نمیری از صبح دکان باز نکردم مدوم بی‌کسارم دوا و درمان میخواد اگر توانستم میاد اگر امروز به خانه برنگردی تمام چردیگا دارد یاد از به نمیرفن پیغام شما رو رسیدیم کفشو رو هم برایت کار من اگر نتوانستی مستحق میشم مستحبت نمیشه. نمیشون مابا پدرمان چه رفتار می کردیم شما نیرزا حجوری پسرش رو ترک میکنه. در بین بازار با مرد نابینایی رو برو میشه به من بی نواق اومد کنیم سلام چطور شد که مرا نشناختی؟ صدای کفشهایت به گوشم نرسیم کفشها رو آوردم برای تو نه نه نه نسان می تو که پا بره بله رد احسان موجب فلا است <تصفيق> میرزا کفشای که نشد به پای مره. مرد نابینا میکنه مرد چند قدم بر می داره ولی گویا قبول احسان بیشتر موجب فلا جده. این حس رو نزن من تا وقتی پا به بودم به هر طرف می رفتم اما حالا نمیتوانم قدم از قدم برمیدارم مرد نابینا چند قدم دیگه برمیداره و به یک باره به زمین میفته آخر نوروز روز مگر من به تو چه کرده بودم که با من جنید کردم فریاد نکن من فقط میخواستم به تو لطفی کرده باشم لطف کن و این منت ها از سر ما بردار اگر میخوایی همون پول سیاهی مراده پول سیاهی میدم به شرط سیاهی میگه به شرط آن که دردت ترم برداری. مرد میرزا رو از پا در میاره میرزا کفشا رو برمیداره و کمی جلوتر در گوشه ای میگذاره و به راه خودش ادامه میگه که یک دفعه یکی از گزمه ها فریاد میزنه این کفشا رو از اینجا ببر میرزا میکرده و کفشو رو برمیداره ماهی ماهی میرزا ماهی... به کنار رودخونه میره. کفششو به میون آب میندازه و بعد به طرف هرشه میره. او بالزه خدا که خان که در نشسته میرزا در باز میکنه چه موقع خواب از بودم برای همین خوابیده بودی تو که آمد و چه رفت؟ تمام آنها که بهشان بعده عرق چلگیه هفت داده بودی آمدن و دست خالی برگفت چه این مگو که خونم به جوش میخوند دالت نتست کند زن که دکان من را بیعتبار میکنه تراب برای از حسن قننات کمی نقو نواد به خطست میموند دارم به روی کشم مطمئد و تجار که حجرش رو بر روی یه حجره میرزاس میگه میرزاس؟ هرگز ندیده بودم این وقتی روز دکان باز کنی اگر به دادت نرسیده بودی هیچگاه این دکان باز نمی شود. چرا نمی رویی؟ بلی ندادی بگو میزا خودش میآید حساب می تو دو مرد مشغول ماهیگیری در کنار رودخونه. مرد تور ماهیگیری گیری رو از آب بیرون می کشد برادر برکت از آب هم رفته مم. <ساق> بلد غیر سیبی هم بدام ما افتاد حبدالله امروز دست خالی به خانه بر نمیگرد خدا را چه بیدین شاید نور هم در شکمش باشه چرخایی نیرسان ببین با من چه میخونیم آنچرا که خدا روزی من کرده نگه بیداری و این نجپت را به من میدهی نکند این هم رحمت رودخانه است شاید میرزا و بیچاره چپشای خود را گم کرده و حاضر شود در برابر آن پاداش ناچیزی بدهد عبدالله کجا می میرم روی؟ می رویم گم شده ای را به خانه اش پرسانم هم دل بندم که فقط با بودن تو به خانه. خوش آمدی سفا و شادی یا بردی یا بوده هانت را شیرین کن و پسانگاه و سا درقی یا مرد ماهی گیر کفشایی می روزاره داره و به طرف خونه ای کار کردن میرزا کاسه ای پر از نقط در دست گرفته و سعی میکنه تا به خاطر بسپاره که چطور به همسرش خوش آمد بگه بیا و کات را شیرین کن نوشیم و خستگی راحت به در کن و هرانگاه که میل جدی و س عقیات درکن آبقا همه خبر دهید. همه جارازی رو رو کنید تفخص کنید که آیا دوز بوده یا مشتری یا دزدی در قابل مشتری باید رازی میکنه با مرد ماهی میگه چون؟ به در بود نه منتظر بودم اولی منتظر تو از درد با خبرم نیزم برای تو مجدهی دارم که اگر بشنبی و ساعت به آخر میرسده تو گم کردیم اصباً گرگ لرده بو به خانه پدرش ده بجرد. نمی دانستم آنجا خانه پدرش ده. هر هرچه بود گذشت من نافختگی کردم قدرش را ندانستم خیال نمی کنم از تقسیرم بود همین که پشیمانی برای اون کافیست تن آمی بده تا تو را با اون آشتی بده واقعاً ممکن است ای قلبانت که واسطه خیلی هست. من بیشتر از این ها وقت گذاشتم یعنی که قاید حالا مرد ماهی گیر انعام رو می گیره و با کفشا رو به میرزا نشونه حالا شد فقط به من نشانش بده تا به پایش چه حاجه او زود به پای تو می افتر اینها رو با من آشتی بدهی چه بزن تا به حال مثل ماهی لح میزدی چه که حالا به به؟ میدید رودخانه برگردد؟ پس تو هم این خانه برمگرد مرزا کفشا رو میگیره و به طرف مرز پرس بیکنه و در خونه میبنده بیشاره عقلت به هر حال من عادت ندارم داره مخت ماهارم در برابر این سکه ها بایده مرد مرز ماهی گیر رو به طرف پنجره اتاق پرت میکنه کفش به شیشه های عرق جاد برخورد میکنه و شیشه ها میرزن و به روی زمین میزنه میشکنن. میرزا با عجله به طرف انبار میره. واش واش. <سطور> یه جایی خیلی مرد نابینا با یه مرد فقیر دیگه کنار در خونه از اند. عجب و به طرف بوی گلاب میرن. که زیادی از فقرا رو به در خونه میرسه آمدن ای... ای... ای... ای... یکی از اونا در بیزنید میرزا از پنجره سرک میکشه چه میخواهید؟ نظرتان قبول خدا رفتگانه شما را بیا مورده به وضعی آمده ایم کارتان مره هلا مستحب چیه مثل اینکه زبان خوش حالیتان نمیشون میرزا به حیات میاد و چوبی برمیداره و در و باز میکنه هر جه میرزا را بخوره تا آخر اوم مریض نمیشه جاودی آمده اید، میرزا نوروز. کمی خانه چند بار پختی و چرختابی چی فردی؟ آیا بیشترش کنار؟ یه کلیت در آخرت نه تان قبول باشد. آله جنابی، تام سرتان نمی شود. میرزا با چوب به ترافی فوگرها حمله بر شود و آن را میزنه و بعد به داخل خونه می اگر یک کاس نزلی به ما می دادیم در همین حین گزمه ها سر می دادیم خدا از تو نمی که بما ما می کنی آن هم به خاطر یک کاس نزلی چه شده؟ برای گرفتن نزیب به در خانه میرزا روز رفتیم اما چغ بر سرمان زد دست به برات شکان در با یه فرات چراغ کرد گشبل گور که کاش مره شکست اما! میرزا درد سر بزرگی برای خودش درست کرده اه بله قربانه تاوان زیادی باید بفرداده چکایت ها را بگوید تا بنویسد آرام باشید آرام یکی یکی آرام میرزا به انبار رفته و مشغول جمعوری ششایی شکسته است که چشمش به کفشای کنه نش میفته و این ماهی بدبخی های من هم برگشت در همین حین صدای کوهی در به گوش می رسه. میرزا باز هم چوبه در دست میگیره و به طرف در میره تو رو باز میکنه با چوب و بالا میبره که یه دفعه با گسم ها رو برو میشه.گر میدانم که چطور با اون فقط سرش رو ها میرزا رو کت بسته به دارالحکومه میبرند در بین را میرزا با همسرش و دو پسرش مواجه میشه که در راه بازگشت به خونه شما به خانه بروید من الان برمیگردم. تو دیگر برای ما آبرو نخواستی این مرد. آرت خرابتر از آن است که بتوانی به این زودی ها برگردی. میرزا به دادم برس. زنان دارد از دست میداد. واقعا تو بهتره چون درآمد از دستم را خودت دیدی دل پایینش بی فوین اشکستم. من غلطی <تصفيق> میرزا به دارال میبرد. معتمد و توجار هم در اونجا حضور داریم دیگر چه شده؟ کناه هشی خربانت خربانت خربانت. جنون به سرش سده هفت سر هشت پا و دوازده دست و ده کاسه شکسته آرامتر بگویی تا بتوانم کتابت کنیم هفت سر هشت پا ده دست و هیزده کاسه شکسته پنج چشم سالم را کور کرده قربان اده زیادی را زخمین و جبنی را ناقیز کرد قید از اینها مانه کسب و کار اده زیادی از خدمت گذاران و دابویان حضرت حاجم شده امشب برود محبس خانه پردا صبح بیاوری دشت ها حکم تمدیح و گریم جان شود خوازیم دستم به دامنم کاری بکن ها که حاکم من شبیعم بربی مردی بیرودا و مردم داره عیالوار و خانواده داره به میمنت عروسی بنده زاده از تقصیرش نگذریم افسوس معتمد السلطان روی شما را نمیشود زمیندار جریمه ها را تمام و کمال بپردازد و برود اگر تکرار شد دفعه بعد در میدان شلاق بخورد جریمه ها چگونه محاسبه شود چون شفیعش معتمد السلطان است مراعاتش بشود دست ها را پا، پاها را انگشت و چرخ ها را, را عبروزا کنید. اتاعت میرزا به سراغ صندوقچه سکه ها در پستوی خونه رفته. سکه ها را از صندوقچه برمیداره و به نزد گزنه ها که در حیات خونه منتظرن میره. ده سکه طلا تلا و این هم تجده تا سکه ی پس حقوق قدم ما چه شود. با؟ البته شما زحمت زیادی کشیده اید همین؟ یه چیزی در بساط نمانده انشاءالله دفاعی به جبران میکنه <تصفح> اگر زحمتی نیست در حیات را محکم ببندید حاطرت آسوده باشه باید افتیم ما یکی نکمتاز خانم. بخالم میرزا به سراغ کفش میره اونا رو از پنجره به بیرون پرت میکنه امین که بر نگردید کفشا هوا تابی میخورن و محکم میخورن توی سر گزمه ها آور کنید قصد بدی نداشتم قصد حاکم معلوم میشم نه شما را به خدا روی دیدن حضرت حاکم را ندارم گریمه را نفتم بگیرید و راحت میرزا مشتی سکه از بالای پنجره به پایین میزه م... <تصفح> یکی از گزمه ها میرزا را به طرف پنجره پرت میکنه. میرزا با عصبانیت کفش رو میگیره و پنجره رو محکم میبه. به داخل حیاط میره. و مشغول کندن چال در میان باخشه میشه دفتان میکنم دفن فامیدو. اوه، ورطه که ازم چون ندارم. حرکت حوالی می‌ده. بچه‌ای خودمم نمی‌تونم چندین ساعت پیاده راه میره تا حسابی از شهر فاصله بگیره. شدن باید کافی باید. تا کفششو تو هوا میچرخونه و پرت میکنه در خونه مراسم عروسی برپاست و حاکم در اونجا حضور داره تمام حاضری مشغول کف زدنند یه دفعه چیزی از آسمون به روی سر نوماد فرود میاد بله کفشای میرزا نوروز. ما میدانیم یه روز خوشحال به خونه برمیگرده و شالی از کمر باز میکنه و با کلاهی از سر بر میداره و ترشک و مخدر رو, رو به راه میکنه که یه خواب راحت داشته باشه یه دفعه گزمه ها سراسیمه وارد اتاق میشه. دار نمی کنین من چه این جواب محبت های خاج مسلوق به تو ساخید با اونجا رسیده که دامادی پسرش را بر هم میزنه حالت میکنه من که اینجا هستم حسن... پس های تو اونجا چه میکنن ای من منم تو بد قواری ذمخت پس ترکیب چه به قبرساه به جان میمانه به خدا نه یعنی خاج مسلوق از دست تو در خانش امان نداره پس های من اگر آمده ان ایمیل من اومده اگر کفش های که چرا بی من من برای این عروسی کفش های نوعی خریده میزه کنید من داشتم برای, برای عرض تقریب و تقریب پیشکشیمی آحمد هم. آه همین لباس ها پیشکشیت کن یه محلوب هست اینجا میرزا مستصل میمونه و ناچار به انگشتری اشاره میکنه بعد سالش به جانه بدهی؟ نفه چشم من روشن میرزا دوروز از تو انتظار نداشتم خاید من کسی نیستم که جواب خوبی را بدی بدهم نمیدانم دنیدانم این کفش ها از کدای اینجا رسیدم؟ نکنه کفش های تو پرواز میکنن. بعضی با من دشمنی دارم من داشتم میامدم عروسی دلیلم, دلیلم این کفش های خریدم دلیلم غیر قابل این کاره اگر رخصن فرمایید عرض عدوی خدمت ازت حاکم بود اگر شکایت کنیم جرمش از ست دینار کمتر نیم آنا ندار ایزا به احباده بود او یا ما باید دائم قیافه پسر خاج مسعود یا همون معتمد و تجرق با سر و صورتی کبود در گوشه از محرس نشسته میرزا به ایادت آنو آی چه قرار دامادی این همه پیشکشی شما شما میرزا به سختی انگشتری خودش از انگشتش بیرون میاره و به پسر معتمد و توجار پیشکش میکنه پسر مطمئد و تجار زهربین از توی بیرون میاره و انگشتر رو وارسی میکنه بله مرخوب است که هم مرخوب است خدا بیامو شب دامادی به من داد. پس تو چرا انگاه شب دامادی پسرت به ندادی. همین دا بفرماییم یه یا ویراث خانواده را نگه دار در عوض معادل آن حواله کن جواهری حروم سو دامات درابن بگیرن از خونه معتمد دو تجار بیرون میاد مردی اونو صدا میکنه مرزا نروز شاید خدایا، یعنی در این شب های پیدا نمی شود که مرا از شر این کهفش خلاص بکنه. <تصفيق> پای میرزا سنگی گیر میکنه. میرزا تعدادش رو از دست میده و سرش داخل دهانه یک چاه گیر میکنه. میرزا به سختی سرش رو از چاه بیرون میاره. یه دفعه نگاهی به داخل چاه میندازه. <تصفيق> خدایا شکرمت باید جایی که به دنبالش بودم همین باز شد نهت بر پدرش که برگرد میرزا کفششو داخل چاه میندازه نیمه شده طباخان شهر دور یک حوز جمع شدن و مشغول تمیز کردن کل پاچف و سیرابی و وسایل کارشون هستن مردم از هرچه بوزدارند از شکنشان نمیتوانند بوزدارند خوش به حال شما حالین فضا هر شید برنجین نزاده از مشتری ما کار کلب فضل از همه پر رونق دارد چون کلب و پاچه خواهان پرامان دارد اونم گرفتاری دارد حیوان را تا آخر که میفروشی به زل میزند و نگاه میکند انگار تلم کار است و یا عرص پدار به نصف اول چشمهایش را در بیاد که از سکه که تا خیالت راحت هست که سیراب می پروشی و شیرده یک بار سیرابی با کن تا از عمرت سیر شویم پس چه بگویم ما شوربا فضا به خودمان یک پیاله هم نمی رزن. به خدا هر بینوا کلیدی گذرش به ما من یک کاسه شوربا ای به شغل ما این است که سک دورش زیاد جمع می شود بس تو استخان دارد ای بابا آب چه شد برویم برویم برویم که صد باید مردم را خانی بگیر جنابه میرام جنابه میرام پایشیر زافیه بند آمد آخر چرا؟ نمیدونم دستا جو کنید افایت پنبوشه گرفته؟ داشتم کله حیوان را از خونها به میچستم که آب ایستاد دیگر هم راه نداد دو سمت مختلف میرویم تقسیم جناب مغنی باشی آه. تلاب و چوب گزمها آه. از دور فریاد میزنم او بوی اختشاش نه راه آب گرفته با ایجازه یکی کارتون برسید هرچه هست دران چاه است. کمی پیش مردی دیدم در اطراف چاه میگه مرد من. که از ما نزدیک میشد و همه به طرف سرچشمی آبی هست از همون وقت قصد شوم آن ناجوا مرد که افکار پلیدی در داشت، بر من آشکار بر منم همینطور ولی نمیدانستم آب را به روی مرومدی گناه میبندد یکره حیوان داشتم بود که آب تا کشید حیوان زبان بسته این مردی که گفت یه چه بود به خونه برگشته بود تو رخت خواب خوابیده که باز هم گزمه ها بالای سرش حاضر میشن میرزا رو نزد میر میبرد. ما در تدارو که امر مهم می هسته مضاهم نشبیم شایدان کار مهم این باشه پس بروید پیش داروغه بستن آب؟ این کار کوچکی نیست یک امر مهم همون نیست چنین جانیانی را ما اینجا نگه نمی داریم. یک راست می دارال گفتم خواب حضرت آکم را هم نزنم بله البته آن هم امر مهم آکم نرخوابه با مشغول خروپف از خواب می پره. اصلا برای بیرزا دو روز اتفاقی افتاده در همون موقع مهتمد و توجار هم با نگرانی از خواب می میرزا رو پیش حاکم بره در چگونه می توانیم از دست تو و این کفش های نمبارکت خلاص شدی؟ سیاه چال قربا البکه بعد از جلیم چهاره آخر سیاه چال هست ببرید من اون <Press> که بر مردم بیگناه آب میبندد و خواب راحت را بر ما هست یه دفعه موتمدتو میشه قبید هسته آه نمیخواهد چیزی بگویی خاج مسلور بخشیدم محاصله کن تسارت طباخان و انعام میناب و اویار و مغنی دستخوش اساسان و کارمزد اهل دیوان رادی شدی خاج مسلور محتمد و توتر مبدودم بردبار منمونمونیتون اون کفشهای ناموارکت ها دیگر ندید میرزای نگونبخت دوباره به سراغ صندوقچه سکه ها رفته تا جریمه هاشو پرداخت کنه گزمه ها سکه ها رو میگیرند مرسا تو به این زودی کجا میرو میرزا میرم دوکانو خودم باز کنم دیگر آخه در بسافت میرزا کفششو به روی دوش گذاشته و راهی حوشرش میشه با شما چای که تمامی اندوختم رو بدباب کردی لعنت به تو بینا به حرفه زنش فکر میکنی دیگر برفی کردم کاشا والد نمیگی بینهایم را کردم میرزا اگر تو حاضر باشی آن کفش ها را بفوچی من چرا حاضر نباشم وصله کنم که بعد اوجهت بیشتر تن بر تو با وصله هایم حالا که کفش های نوعی اگر ازم پرسن گویم دو میرزا به در حرجه میرسه کفششو رو روی زمین میذاره تا در حرجه را باز کنه یه دفعه یه سگ کفششو به دندون میگیره و راه میفته دار کن داقت مشکل دیگری را ندارم لطف خو با عجله به دنبال سگ میره. سگ به داخل خرابه ای میره و میرزان بدنبالش به به میرزا تکه سنگی رو از روی زمین بر داره با، به طرف سگ پرت میکنه. سگ اشاره رو روی زمین میذاره و از اونجا دور میشه. میرزا به طرف کفشا میره. من نفسانون روی زمین میفته. تو دیگر از کجا سمسوی <تصفح> <تصفح> <تصفح> میرزا کفش رو بر و از جا بلند میشه هی دفعه فکری ذهنش میرسه خرابه شما قبلا فکر نکرده بودم وقتی آدمها ها دشمن هست باید سگی راه رجات رو را نشاندن دوزده در میان خرابهی مشغول تقسیم کردن قنایم هستند گزمه ها از بالای دیوار اونا رو نظر دارند چه؟ چه دوزده مشغول و پایان شهره درست وقت تقسیم قناعیم افتخارش را به نام ما سرد میدوند افتخارش را به نام ما ها و برای قربان بله آن دستشان در کار خبر کرده کمی دورتر میرزا کفشاش روی هوا میچرخونه و اونا را به طرف خرابه پرسیم کنه نقشه ها نقش براب شد همده گسم ها به دوزده همده می میکنن و حسابی با آنها درگیر میشن خوش و خندون در حال دور شدن از خراب است که جمع دزدا در حالی که گسم ها دارن را دنبال میکنن از راه می رسن و از که قرار رد میشن. میرزا نقش زمین میشه <تصفيق> یکی از گزمه ها کفش رو از روی زمین برمیدار رو و میگه تمام نقشا به هم ریخت له این خبرششن من دیدم اگر دستم به او ب این گررب اینجا رو میگکن قش حاک و میرای بچی که دوباره در مقابل حاک هر از این ها منتظرت بودم من بودیمگه هرز به داره برو. حتی فرستادم ته خاج مسرور مورتمی روز پجار که بیاید شفاهم راضی هستی که ما تمام شب و روز در خدمت تو کی هستیم حضرت حضر، حضر. هست. هیچ از... مگو یه مگو. وقتی سر بر باری میگذارم مطمئن نیستم که میخوابم وقتی لغمه ای بر می برمیدارم میدارم نیستم که به دهان میگذارم هر لحظه با خود میگویم که آمد شما رو با خدا اجازه ده فرمایی هم آم. روی که جالت نکشیم مواده بگذاری یک آب خوش از گلوی ما پایین دارم خب بفرمایید همه ارکان ملک برای شهادت علیه تو به صف من چه کنم شهادت یکیشان برای بستن تومار زندگی کافی هم دست دوستان او خبرشان او چند باعث سختشاش اوست به خدا بیخبرم خوابه دیدم گذدمش گفشا خلاش می رحم به ما بس است چند بدهم عذری نیاوریم تمام زندگیم می را میدهم که کفشای تو را دیگر نبینم قربان موهام رو تو چشم ها دیو باز می‌کنم قربان ها آمدین قمین حرف هایت به بو خاجی او شفیع او دامنشاست مردی آبرودار و مردمدار و خانواده دارش دار. بله قربان حرف دیگری هم داری خیر قربان. شرمنده خواجه. کاش بتوانم روزی جبران کنم میخواهم جبران کنی م. فقط از تو درخواست میکنم دخیل توام هم می‌کنم میکنم لطف کن یا دست از این کارهایت بردار یا خیشیت را با من انکار کن هرچه تقصیر در همه عمر کرده این به من جواب روز حسابت با من ولی ولی بگشار به کارم برسم ای خاجه بزرگ اگر میخوایی خودت به من آسود شد فقط یک کار بکنم بگو تنچه بگویی باشد میپذیرم این کفش ها را از من قبول کن نه این را دیگر نه م. اگر چاش کنم راستی با دوستانی فرط می اه؟ اه؟ را قطع میکنم بردر دارالحکومه میابیزم نه راش سره مرا را بیزدیم آما چه کسی شفاعت مرا را بکنن محاسب کنم مزده اساس ها مزده اساس ها و جزمه ها که برای دستگیری آنچه نمک نشناد شب تا صبح بیداری که شیده مزده چاکران؟ بله مزده داروبه، نیوشب، نیر اساس و تمام انها که در کار نظم و نسق شهر بودند، مزده شبکاری، اضافه کاری، دلخوره و... گریمی احتمالی همکاری با چهید نه بله. هر چیزی دیگر که برادر خودتا میرزا و میرزا چند کیسه یه ضرب کاتر میده و دوباره کفششو به زیر بقر میسره و از قصد بیرون میاد و روی سکوی کناره در میشینه کیاس نگا کنه میگه اونجا برای نشاستن نیست میرزا به راه میفته دروشکی در حال گذری میرزا میگه باو بر کجا میرم جعفر مرا حفظ کرد میرزا سوار گاری میشه و به همان مرد به سادج شخوری را از گاری بیرون میپره میونی یک مزرعه سبزیکاری <تصفيق> به یک مزرعه سبزیکاری میره گودالی رو با دست میکنه در اطراف مزای مخفی شدن با بید و کلنگ به طرف میرزا میان میرزا کفششو داخل گودال میذار و روی گودال با خاک می کشونه هم هست برای دوزی به جالیزه ما میایی؟ ها. ده شب کشید کشیدن به خدا من دوز نیستم اگر بودم چرا رود می آمدن؟ بسید گستا شنگ شوی. چیزی همراه ندارم اگر دوز نیستی اینجا چه می کردی؟ شاید جنجی پنان دارد یارو. یعودن چرا بچاری؟ کشاورز با گودال میره. میرزا با عجله پا به فرار میذاره که یک دفعه در تله کشاورزها گرفتار میشه. درم بیووریت! درم بیوهی! یارو جای خود بیفتجت بهارت نامکن است. جنگ گودانیا. کشاورز شروع میکنه به کندن گودال. یکی از کشاورزها کفشای میرزا رو به دست میگیره و به نزدیکی میرزا میاد. این دیگر چی؟ باید از اون پرسی. شما را به خدا پس می آبری. هم سنگ گنج است. نیش از یه گنج دابانش را دادم بس می آوریم بس می آبری. جواب بده این که ها چیست الهی سباطاقی برای شما خوشبختی بیاورد به خاطر همین سال گذشته برکات نبود <تصفح> باران از ما بگری خوش حالی بابا ما چه دشمنی داری من دشمن شما نیستم من, را دشمن من را از دشمنی گریختم مرا او برهانید شما را به خدا من را ازو دیوانه برهانی. بازش کنید جای چنین دیوانه ای است <تصفح> اگر میخواهی جان سالم بدر بری این تلس به بدبختی رو بگیر رو از اینجا برو میرسا کفشاشو برمیده رو به راه میفته نیمه شب به شهر میرسه کفششو مقابله در یه خونه میذاره بلافاصله مردی در خونه را باز میکنه و میگه اینجا نه میرزا دوباره کفششو بر و به راه میفته تو تاریکی شهر به کنار یه گذر میره رو و روی یه سکو میشینه مرد فقیری کنارش نشسته شا به حالت که برهنه پایی برهنه به دنیا آمده ای از دنیا می روی. باور می از دست این که افشا خلاصی ندارم؟ می بروم خانه از در و دیوار بریزن خوشا به احوالت که از دنیا پاره نه کسی کاری به تو دارد نه کاری به کسی داری خوش ای. بخواب که خوابت را سد سکه میخدم باسایش اخیارت را هزار من خواب یادم رفته خواب چیز زندگی من خودش کامو همه در کاموش من هستند من بیا. بیا یک چی من خوردم فرح دیگر از خوردن بینیادم را دو بسته دارم که از همه چیز بینیادم کسانم از من بیزارم و ترکم کردن میدان چرا؟ به خاطر این کشهای لعنتی حالا من ولشان کرده این اینها ولم نمی کنم <تصفيق> ممی خلدیم؟ کن خدا ترا کر خلق کرده و دردهای مرا نمی شند. ولی چه راهی که فرزندان و همسر رمیدم را بخواهد؟ پس نمی آورم. <تصفيق> شو که لال خلق شده ای و مجبور نیستی که در کاری دخالت کنی که ممکن است دامن تو را بگیرد. ولی شاید بتوانی کمکم کنی. آقل بخشیدن هم نیست ولی اگر با چند سکه از من بپذیری ممنونت این شهرم نه؟ بچ هیچ آقلی زبوده نیست. حال دیگر این کفش مشهورترین این کفش های این شهرست به یه وفاداری به صاحبت در هر واقعی حتی این کفش عزیز حالا که روی دست من مانده این شما را نبویجم و این که ازهای نورا از خطر سایلشون شدن یاد نده هم. نه آن بدی هم نیست مرد عزیز نظرت چیست آیا پر پرسر و صداس یا بسیار گنده همه چیزی که تو دیده بودی باید یکی این دوروبرها خنجری خورده باشد شاید هم مرده باشد ها خفتن هست وقت بیداری بلند شو بلند شو مرد. میرزا به نزدیک مرد میاد دستی به شونه مرد میزنه مرد به روی زمین میافته در حالی که خنجری به پشتش فرو رفته میرزا با عجله <قجلی> <مید مرزا> از اونجا دول میشه بیست بیست مرد از راه میرسه <مید> این <مرزا> دامن را میگیرد بره کن برم برم خودم حاکم را خبر کنم نگر نجی آیه های شدای کمشای میرزا نارو میرزا کنار در قصد میشینه دوباره پوشیده نگه افان پنجره رو باز می که هستی منم میرزان آروز خبر مهمی میبره حضرت حاکم دارم خوابم و بعد با اصابانیت پنجره رو میبنده میرزا کنار درم هست میشینه گروهی از گزمه ها از راه میرسن نگهبان پنجره رو باز میکنه و میگه قاعد باش که اینجا نشستم من میرزان آروز هر جهنمی میخواهی بنشین کافیه، کافیه یه نجوم می‌نی. ورا کن. چه شد؟ ببخشید جناب داروگ. کفشای من کفشای من من اینجا هستم, من... من هستم! من هستم! کفشای من من من اینجا هستم من اینجا هستم من اگر یک بار دیگر در بزنی هلقت را سوراخ میکنم این بار دیگر کارم تمامه بگذین کفشای چیزی دیگری نیافتی؟ جای پای قاتل همانجا بود بورم تحقیق خویزمانه چه کسی بود جای پای یک نفر با آن بزرگ و ما بچست میرزانو روز افدا آ تمام برران چپسته به اینجا بیاورید داشت چ کنید تی از نجبان ها را هم برای کمک ببرید اتاعت با جوکی بروم دفتر و دستک را بیا حزم نیست کار به حساب و کستاباب نمیرسد معمین مخفی را هم برای تحقیق بفرستید امرتان مط است جسم ها دست و پای میوزها رو میگیرن به نزد حاکم کمیر طابخانهش می‌رویم جناب خاله پیشانه قربان مخلولی که از 42 دوز بوده از چرا لباس گدایان را به تن داشتی قرار بوده خبری از مخزیگاه دوزان برای ما بیاورد مولا نگهبان ها بگویید محتمید تجار هم حق ورود ندارد اتواقیم حضرت حاکم معمولین از مقتول خبرهای آبرگه مقتول؟ ما به دنبال قاتل هستیم مقتول به چه کارمان نیاید چه شد؟ قاتل کو؟ ور از او نیست. قربان به حضرت حاکم ارز داشتم. ما السماء هنوز خونی؟ دلایل جرم <تصفيق> کافی امان دهید امان دهید امان دهید دهارد کنم امان دهید امان دهید امان دهید دهارد کنم امان از ما این، به محفظ بگم دازیدش تا فردا صبح سر فرد از بدهش داشته میرزا <تصفيق> <تصفح> از ترس آسینه ای که از گزمه ها رو می آسینه لباس گزمه پاره میشه شه پشتار می یک بدانید از روز گذشته سر ناسفاس میرزان و روز ادار در میدان شهر از گردنش قطع می شود بلکه خواب بریدگان از دستش راحت بخوابند و امان بریدگان امان یابند امروز یک پاس از روز گذشته یارانو سپاه مستمیرزا نورود اتار در میدان شهر از گردنش قد نشواد یارانو نورود در میدان شهر... پسر و دختر و همسر میرزا خبر جارچی رو میشنوند و به همراه همه مردم ناراحت و گردون به میدان شهر میرند همه در میدان شهر حاضر شدند قدمات انجام کار فراهم میشه شما که غروب امروز را میبینید شکرانه بدهید شما که خورشید فردا را می‌بینید شکرانه بدهید به من عاجز کمک کنید مقدمات انجام کار فراهم میشه جلاد به میون میدون میاد تو مرد مسافر در گوشه‌ای از میدان ایستاد شهر عجب جایی است گردن می‌زنند چقدر تماشا دارد هوشدار هوشدار ایها النور فخر زمین و زمان مفخر مکین و مکان نور دو مشرق نگین انگشتر عاد حضرت حاوچم نزول اجنال میپرماین حاکم به جایگاه محسوس میره و روی سندلش میشینه خواهد و تجار با اجانه نزدیک میشه هسته حاکم نه قاتل <سکت> را بیاورید قاتل را بیاورید قاتل را بیاورید گزمه ها به مهبس میرن و میرزان و روز و دست بسته به نزد حاکم میارن قاتل را آوردن خاجم ازم به کمکم کن به خدا من که رسیدم کستش بده بود تو مرا هم پیش عزت حاکم بی اعتبار کرده حاضر نیستم حتی حرف هم را هم گوش کنم آخر <تصفح> <تصفح> حاکم حادر دستم به دامنت از او بگذر پدرم از ام بدی نمی بدرم مرد خوشکردیس او نمیتواند ودی کند مگر به خودش حتما دشمنی شده صبر کنید رحم داشته باشید ای حاکم بزرگ ما بکش و او رو رها کن مرا بکش. بعد از او زندگی نمیخواهم من یتیم نکن حاکم این همه آدمی به ها کجا بودن خیال نمی کردیم کسی هم باشد که این محض را دوست داشته باشد پدر من آدم کش نیست از کشتن موری ادا دارد من با آنها همزبانم مرد بدلی نیست بیشتر از آنچه چه میداند نیا مخته به حرمت عشقای من از او بگذاریم به حرمت دل سوخته من <تصفيق> از من میخواهید قانون را زیر پا بگذارم؟ میخواهید قاتلی را آزاد بگذارم؟ جلاد حکم <تصفيق> <و> اجرا کن <تصفيق> سر میرزا رو به روی تنه درخت میذارن گلاد چمشیرش رو بالا میبره مزن گردانشا باقید خاطرنا نیافتی. دست نگهدار او چیست؟ یکی از شهل گذرست قلاف او را یه خنجر یافتیم خنجری که در پشت مختول بود نزد من است. اندازه کنید. قلاف را بیاورید به گناه خود اعتراف می آنچه را به ما گفتی به عرض حضرت آکم برسان بله او را من کشتم اگر باز هم زنده می مند میرفت مخفیگاه ما را به دارو خانه خبر دهد اینا ما را از خالت محروم سکن. ما اعلام می‌داریم که قاتل اوست و میرزان و روز بیگناه است. آزادش کنیم مانو <تصفيق> قاتل را ما بیا نه ببرید شکنج خانه تا سی و هشت دزد دیگر را از روی او بشناسی. میرزا به نصد خانوادش می ره. جلاد با عصبانیت شمشیرش رو به روی درخت میکوبه دو مرد مسافر میگه. شهر رجاب جاییست چقدر تماشا دارم <تصحنت> نمیدونست برای برایتان عزیزم بیا بیا بزر کی این دیرا شب عروسیت یافت رفته بود این انگشتر که پدرم شب داوادی به من داده مال دوست بلاده خبیث، خور را ندید. بگذار، وصی را که در خانه است به من میدهد. اینی که دارم در اختیار مادر است. از او اجازه بگیرید، از دو. کپسول میرزا، بگیرو انعام ما را هم بده. نه از تو اوکی. دست بده به من. چه شره؟ به تا همه اینجا هستند بدانند این کپسول دیگر مال من نیست. آه بله آتش و چراغ و هیزون بیاورید و این کفشها را در حضور همه بسورد بله بالاخره آتشی فراهم میکنن و کفشهای پردرد سر میرزا را داخل آتش میدازن میرزا با لبخند به شله های آتش خیره میشه و سوختن کفشهاش رو نظاره میکنه و بالاخره ماجرای کفش های میرزان و روز هم به ابدیت میپیونده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سلیم که از خوابی فریدا، کاش اصلاً نخوابیدم. ما هیچ کدوم این شب ها نخوابیم. عراکات به این هم از ماجرای قبضهای و نوروز امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشین و ما همکارانی که در تهیه این برنامه بندریاری کردن آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار و آقای فرشاد آذرنیا تهیه کننده و سردبی و بنده هم نگین خواجه راوی و نویسنده بارزوی اینکه این که اوقات خوشی رو در پیش رو داشته باشین همه شما رو به خدایی بزرگ خدا نگهدار. Oh, my God.